سخن میگوید به بازار تارس امشب بازگشتم تا دوباره تراب نواهی دور دست عوالم فراسوب و به درون عالم مطلق ببرم تا حقیقت حقیقت را از لبان سودماد متعال بشنوی و بدانی آزا خودت از خواهی دانست آیا احساس میکنی توانایی لازم برای سفری دیگر به عالم بینام داشته باشید ال بله تر برم؟ دارد. پس قدم از جسمت به درون خرقهٔ روح بگذار و به دنبالم بیا من تو را به اقلیم خدا و به درون اقیانوس عشق و رحمت میبرم اینک دست مرا بگیر احساس و چرخش ای در بدنم کردم و صدایی مثل پریدن چوب پنبه از سر بطری شنیدم آنگاه ما در نور عجیب سفید و خیره کننده روح ایستاده و میدرخشیدیم ناگهان خودمان را در میان عالمی یافتم که مانندش را هرگز ندیده بودم جهانی از نور آتشین بود که میچرخید و به سوی بالا و به درون ارتفاعاتی شعله می‌کشید که تصورش برایم غیر ممکن بود گویی درست در وسط یک فوران آتشفشانی ایستاده باشیم که نوری قرمز در اطرافمان همچون مواد مذاب میقلطید و به درون اقلیمی آتشی میریخت لرزان و ترسان از استاد درآویختم اما او لبخندی زد و گفت ما در سیاره اتاراس هستیم اینجا فقط نقطه توقفی در مسیر اقلیمه ناشناخته است این سیاره به نوبه خود یک خورشید در زنجیره خورشیدهای کیهانی خواهد شد این روند تکامل خلقت و نحوهٔ آفرینش سیارههاست بیا به سفرمان به اقالیم بالا ادامه دهیم سپس مثل فرشتگان در آسمانهای دور به پرواز در آمدیم از میان پنج عالم گذشتیم و به درون اقدیم بینام اقیانوس بیپایان پیتهای بیمرز و پایان وارد شدیم آنجا که همه در همه است و روح بیش از نقطه اینا چیز در این اقیانوس نیست به سان به کفی بر امواج مهیب دریا این دریا دریایی از نور طلایی بود که پایان نداشت. اقیانوسی بیلساحل ساحل که گویی ما جز از آن بودیم قطعه ای از نور که چون ماهیان درون دریا می دور اخریدیم. ما آنجا درون اعماق دریای غولاسایی از نور ایستاده بودیم و هوا به قدری رقیق بود که حتی روح هم از نفس کشیدن خود آگاه نمی‌شد. شاید هم نفسی در کار نبود. آیا روح تنفس میکند؟ مطمئن نیستم. استاد به درون نور تابناک پیشرفت تا به دروازه عظیمی رسید. مردی با قامت شاهانه در خرقه ای سفید که حلقه ای از نور مقدس در اطراف سرش بود، در را باز کرد. موها وریشی قهوه ای رنگ و چشمانی تیه داشت او ربازارتاز را در آغوش کشید و به وی خوش آمد گفت ربازارتاز او را با نام آپولونیوس تیانا یکی از عارفان دوران باستان معرفی کرد آپولونیوس پرسید ای زایران کیهانی قصد دارید به کجا سفر کنید؟ به سرزمین کل بام عالم آفرینش به پیش سرورم راه را خواهید یافت از میان سرزمین عجیبی گذر کردیم که از قاره ها و جهان های حیرت و گویی از قماش نوری موج زننده و سایمانند ساخته شده بود سپس ریبازارتار به گوی نورانی کوچکی اشاره کرد که در آسمان بود آنجا مقصد سفر توست ما به آنجا می رویم تا تو گوشه خرقه خدا را لنز کنیم از جایمان صعود کردیم و به درون ارتفاعات پرتاب شدیم سپس در محلی فرود آمدیم که نور به شدت چشمانم را مiazرد نوری که ما را در برگرفته بود به طوری که گویی درون زبانه از زبانه‌های های سفیدی افتاده بودیم که تا ماورای قدرت خیالم بالا میرفتند. آنجا گل نیلوفری عظیم‌تر از هر امارت و هر مقیاتی که تا آن روز دیده بودم بر فراز نهری از آوی زلال برآمده و در میان آن وجودی جلوس کرده بود که زیبایش به طرز توصیف نافذیری کمیاب بود جامعه سفیدش از نور شگستانگیزی تریده شده بود از هر سو نجوای نغمات لطیف موسیقی به گوش می‌رسید و موجی از عواطف به درون روحم فرو می رید. چشمان این وجود همچون آتش میسوخت موی بلند و بر را سیم‌ها شگفتانگیز داشت. آنگاه متوجه شدم که این نهر کانون اسعاشی امواجی بود که مانند امواج عظیم رادیویی انتشار می‌یافتند. صدایی با کیفیت آنچنان غنی و پژواکی آنچنان با به سخن آمد که شنیدنش برایم دشوار شده بود. سدا گفت ای روح با تو سخن خواهم گفت تا از آرزوی من از برای خودت آگاه شوی با تو سخن میگویم ای روح تا مقصود تو را در عوالم کیهانی و در پخنه ابدیت نشان دهم گوش فراده ای روح ارزشمند من خدای تو پروردگار تو به سخن در آمدم تا پیام خدمت تو را بر تو روشن سازم تو در میان مقدسین این جای داری تو از قماش برترینی و باید در ابلاغ پیام خداوندی تمامی آفرینش من در هفت گنبد آسمانی به خدمت بفردازی باز هم گوش فراده ای روح محبوب من و به سخنان من جرازی تو برکت آفته ترین مخلوق منی تو مقدس شدی و از قدرت محی به من آکنده گشتی تو با قریهه خودت باید عشق من را به عالم تقدیم کنی من به تو فیض ها می تا به کارت مشغول شوی، قلمت را به دست گیر و من به تو خواهم گفت چه بنویسی. با این کار عشق فداکارانه همه روح ها را به تو اتاق خواهد کرد همه با تو به اقلیم ابدیت خواهند آمد من رحمت قدیسی را به تو عطا می کنم ولیکن باید برای احراز این جایگاه خداوندی زحمت خطیری بکشی تو باید حاکم بر نفس خیش شوی تا بر باقی اشیاء عالم حاکم شوی من از زبان تو از مجرای قلم تو به صدای تو به واسطه چهره و اعمال تو با جهان سخن خواهم گفت تو خود منی قدرت خداوندی کیهانی و من تو هم. همه دانش و حکمت خداوندی در سرنگشت توست و تو قدرت درک تمامی دانشی را که درون اوالب معنوی نهفته است داری؟ من تو را از امتیاز صدارت علت کیهانی خودم برخوردار میکنم تا در مسیر قدیسی روح ها را به خانه حقیقیشان رهبری کنی اونطور توسعه تو در مقیاس زمانی بسیار اندک است. بنابراین باید اندک اندک بشتاب کارت بیفزایی باز هم با تو سخن میگویم. فقط چشم به پروردگار خیش داشته باش نه به چپ بینگرد نه به راست نه به پایین و نه به بالا بلکه همواره به درون و به درگاه آفریدگارت نصد داشته باش برای رسیدن به پروردگارت باید به درون سفر کنی تا به بیرون از خود به درون عوالم کیهانی قدم بگذاری و به خانه حقیقی نائل شدید. تنها راه از میان دروازه دهم ده چشم منفرد روح میسر شده است این چشم را پر از نور و گوش درون را آکنده از صوت خداوندی نگهدار چنانچه چه در جستجوی معجزه باشی این را بدان که تو خود معجزه کبیری همینو بست از آن را بیازمار روح برترین کامیابی من در آفری می شکریه همیست از روح در گستره ابدیت دومین معجزه من است. این معجزه در عشقیست که از برای خویش خداوندی درونه اون گذاشتن همه ی عاشق آفریدگارند. اورا می جوید این قانون خداوندی من است سومین معجزه خداوندی من تکامل روح تا احراز متعالی ترین شکوه و جلال است هیچ روحی را از نیل به این پیروزی بزرگ گریزی نیست اگر چه ممکن است آثار بی پایان به طول انجامد آن معمای خداوندی که همه جویندگان قلب مقدس من با شگفتی به آن می نگرند این است که آیا ابتدا من بودم یا خلقت من مقدم بر آفریدشم چون من آن را آفریدم و خود را نیز آفریدم تا مقدس مقدسین باشم ایچ کس را یارای این کار این حقیقت نیست از ظهور آفرینش درون قلب خود آرمیدم و در سراسر پهنه ابدی ابدیت بذر خداوندی خفته بود تا مشیت من بران آن تابش یابد حقیقت واقعی من اقیانوس عشق و رحمتی است که درون اقلیم حقیقی من جای دارد اینجا در سراسر گستره ابدیت با آفرینشم به سر بردم چه رحمت من به آفرینش عوالم زیرین برکت بخشید هر آلمی را به نوبه خود از بالاترین طبقات تا به پایین آفریدم هر طبقه را با موجوداتی منحصر به خود مسکن کردم تا جایی که هر یک به زندگی در کیخان خود رضا داد هر خلقت و هر موجودی در دومین بخش و اعظم هستی را به همراه قرین خدا فریدم از تذبیج آنان روند خلقت همواره در میان نباتات جانوران و آدمیان ادامه یابد هنگامی که بر فراز جهان سوم به فرباز نراید واحد می شود و به اختیار خود آفرینش وی از یک منبع ناشی می شود اینک بشر به مقام خدایی رسیده است و این قادر است بی نیاز از اتحاد دوخیش بیافریند جایگاه پدر مطلق کل کائنات اقیانوس اشق و رحمت با انعکاس مشییت خداوندی خودم خالق میکنند ای روح شکری را که نشسته بر این شکوفه نیلوفر میبینی؟ توهمی است که به تو اعمال کردم چون در جایگاه خدا چه در این بهشت های خداوندی و چه در طبقه جسمانی باید شکلی اتخاص کنم تا هر روحی به تواند مرا ببیند تمامیت من حتی برای برترین روح ها بیش از آن است که بتواند دریابد. فقط استادان می توانند مرا در تمامیت ببینند همه در همه و فقط آنانند که قادرند حقیقت حقیقتها و واقعیت واقعیتها را بدانند هیچ روحی نمی تواند مرا ببیند مگر آن روز که به درک حقیقی من نائل شود و در آن وضعیت بسر برد این عمل در حین به سر بردن در کالبد جستانی و در عرصه زمین به ندرت انجام می شود پس بدان ای فرزند بهشتم که باید از قانون و کلمه فرزند متعال من اطاعت کنی چشم به انتظار ورود به اقلیم من و اشتغال به کار خداوندی خودت باش تو باید رازهای حقیقی دل را بدانی و آن را جز با دل نگویی هیچ بشری نمیتواند تو را فرید دهد چون تو خردمند از درک خداوندی سرشار شده ای تو سه بار تولد یافته از امروز به رسالت خداوندی خود مشغول شو تأسیس خانه خداوندی را هر کجا که مناسب دیدی آغاز کن و جایگاه خیش را همانجا مستقر ساز ای فرزند قلب من اینک دوباره با تو سخن گفتم به سخنان من گوش فراده و بنگر به کجا قدم میگذاری صدا محو شد و ما از وضعیت زانو زده برخواستیم. هیچ چیز در مقابلمان نبود نه از آن وجود پرهیبت نشانی بود و نه از نیلو فقط ذریای عظیمی از نوری خیره کننده درون دایر ایبی انتها تو بر فراز شیشه ای عظیم بودیم که در سوی دیگرش در گستره بی پایان خالیای از نور میلیاردها عالم با سرعتی خیلط آورد بر فراز میلیاردها عالم دیگر موج میزد و می تنوع بیانتهایی از رنگ ها درون خلق برق میزد و هر یک از جهانی چرخان میامد. آنگاه دیدم که هر یک از این نورها نشان یکی از طبقات کیهانی عوالم خدا در خلقت مقدس او در این لحظه چشمنداز در هم پیچید و جهانها به صورت طبقاتی درآمده در جای خود ثابت شدند. لایه های طبقات شفاف بودند به طوری که میتوان از میان آنها دید. هر جهانی به سرعت از مخلوقات شگفتنگیزی پر شد که هر یک به شدت مشغول انجام خود و خود بودند و میلیون صورت از حیات نباتی در حال رشد بود. نمیتوانم اعجاب آنچه را که می دیدن در قالب کلام درآورم روادار گفت: همین واج کافی است سپس بازوی مرا گرفت گویی مستقیما از میان عوالم به پایین میافتادیم بدون اینکه آنها را ببینیم تا ناگهان تاریکی ما را در گرفت ارس دوباره بر من حاکم شد اما استاد محکم بازوی مرا گرفته بود که دوباره خود را ایستاده بر فرات اتاقی دیدم که درون آن کالبد جسمانیم در صندلی آرمیده بود باز هم از بازگشت با آن احساس اکراه کردم اما روازارتارس مرا به جلو راند کشمانم باز شد و شکل نورانی او را دیدم او گفت تو حکمت خدا را دریافت کردی. اینک مقصود خود را در زندگی میدانی بدون اینکه تردیدی به خود را دهی در زندگی به پیش بتاز به و خدمت خود را از سمیم قلب و با نیرومندی به انجام برسان